قاجل گشتن خروس پیش سنگ چند چند تا دروغ و مکر تو خود نپرد جز دروغ از وکرتو. گفت ها شا از من و از جنس من که بگردیم از دروغی منتهن ما خروسان چون مؤذن راست گود هم رقیب آفتاب و وقت جوی، پاسبان آفتابی درون گر کنی باداد ما تشتی نگون. پاسبان آفتابن دولیا در بشر، واقف ز اسرار خدا. اصل ما را هم پی بانگ نماز، داد حدیه آدمی را در جهاز گر به ناهنگام صحبی من رود در از آن آن مقتل ما میشود. گفت ناهنگام هی علال فلا خون ما را میکند خا و مبا آنکه که معصوم آمد و پاک از غلط آن خروس جان وحی آمد فقط. آن غلامش مرد پیش مشتری. شد زیان مشتری آن یک سری. او گریزانید مالش را بلیگ خون خود را ریخت اندر یا نیگ. یک زیان دفع زیانها می شدید. جسم و مال ماست جانها را فدی، پیش شاهان در سیاست گستری میدهی تو مال و سر را میخری، اعجمی چون گشته ای اندر قضا میگریزانی زدابر مال را.